اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم به نام خداوند بخشنده بخشاگاهر آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است هموار تسبیح خدا میگویند خداوندی که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقصی مبرا و عزیز و حکیم است هو الذى بعث فى الامم رسولا منهم يتلو عليهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم الكتاب یعلمهم الکتاب والحکمت و این من قبل لفی ضلال مبین او کسیست که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را تذکیه میکند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد و مسلما پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند و ما بهم وهو العزيز الحكيم و همچنین رسول است بر گروه دیگری که هنوز به آنها ملحق نشده اند و او عزیز و حکیم است ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم این فضل خداست که به هر کس بخواهد و شایسته بداند میبخشد و خداوند صاحب فضل عظیم است مثل الذین حملوا التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار كما مثل الحمار يحمل أثاره بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين كسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند مانند درازگوشی هستند که کتاب‌هایی حمل می‌کند آن را بردوش دوش اما چیزی از آن نمی فهمد. گروهی که آیات خدا را انکار کردند مثال بدی دارند و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند قل یا ایوها الذین هادو این زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ن كنتم صادقین. بگو ای یهودیان اگر گمان می کنید که فقط شما دوستان خدایید نه سایر مردم پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید تا به لغای محبوبتان برسید ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله الله علیم بالظالمین ولی آنان هرگز تمنای مرگ نمیکنند، به خاطر اعمالی که از پیش فرستادند و خداوند ظالمان را به خوبی میشناسد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه فا ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون بگو این مرجي كه از آن فرار میکنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده میشوید آنگاه شما را از آنچه انجام می دادید خبر می دهد. يا أي ولذين آمنوا اذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا فسعو إلى ذكر الله وذرو البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید. هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته شود به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر میدانستید. و اذا قضیت الصلاه فانتشروا فا فی الارض وتبغوا من فضل الله و ابتغو من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلكم تفلحون و هنگامی که نماز پایان گرفت شما آزادید در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بتلبید و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید وإذا رأو تجارة أو لهواً فاضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لحوی را ببینند پراکنده میشوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها میکنند. کنند بگو آنچه نزد خداست بهتر از لحو تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است